قهروبین کلیده سلامتی کنترل میزان مصرف غذا است آیا از خوردن غذا لذت میبرید من همانند شما از غذا خوردن لذت میبرم آیا دوست دارید بدانید چطور میشود بیشتر غذا خورد راهش این است که کم بخورید چون با این کار آنقدر عمر میکنید که بیشتر میخورید. این حرف من نیست بلکه علم پزشکی به این مطلب رسیده است. بهترین راه افزایش طول عمر حیوانات کم کردن غذایی است که می‌خورند. دکتر کلایو مکی طی تحقیقاتی ارزشمند بر روی تعدادی موش آزمایشگاهی به این نتیجه رسید که با نصف کردن میزان غذای می می‌توان عمرشان را دو برابر کرد. بنابراین میتوان گفت که کمخوری تنها روش اثبات شده جهت مقابله با پیری زودرس و افزایش طول عمر در جانوران خونگرم است. تحقیقات نشان داده است که با کمخوری میتوان نابودی سلولهای بدن و از بین رفتن سیستم دفاعی بدن را به میزان قابل توجهی به تاخیر انداخت. پس بهتر است کم بخورید و زیاد زندگی کنید. من هم همانند شما از غذا خوردن لذت می برم، اما بهتر است کاری کنید که این سرگرمی باعث کشته شدنتان نشود. اگر میل به غذای فراوان دارید، بخورید. فقط یادتان باشد غذایی بخورید که آب فراوان دارد. شما می توانید با خوردن سالاد فراوان شاداب و سلامت باقی بمانید.